سلام دوستان عزیز کانال هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه توی بخش قبلی از داستان دختری که وانمود میکرد پسر است به جایی رسیده بودیم که دختر اسب آفتاب رو به دست آورده بود و به خودش بهش گفت که اسب آفتاب هم درایت و دانایی منو داره و قوی از منه من خسته شدم و بهتره برگردم به استبل پادشاه و از اونها خداحافظی میکنه و میره حالا ببینیم که ادامه داستان چی میشه هنوز مسافتی پیش نرفته بودن که چشم اون به طور طلایی افتاد که تو جاده افتاده بود اسب اونو بارسی کرد سوار پرسید اونو برداره یا نه آفتاب گفت اگه برش داری پشیمون خواهی شد و اگه هم برش نداری باز هم پشیمون خواهی شد با شنیدن این حرف دختر پسرنما از اسب پایین آمد. توره گیسو رو برداشت، اونو پیچاند و تو گردن خود بست. اونو از تفه ها گذشتن و کوه ها رو پشت سر نهادن. از دره ها گذار کردن و از جنگلا و چمنزارای پوشیده از گلا عبور بور کردن. سرانجام به کاخ سرور پادشاهان رسیدن. امپراتور به تخت تکیه زده بود و پسرای امپراتورا و شاه دیگه به عنوان خدمتکار دورش حلقه زده بودن. اونا به تازه وارد که باید چند سال اونجا موند خوشامد آمد گفتن. اما چیزی باعث شگفتیشون شده بود. اونا نسبت به تازه وارد کششی درون خود احساس می‌کردند. خب، وقتش نبود که با اونا حرفی بزنه. پس یه راست به طرف تخت امپراتور رفت. اون با صدایی آروم علت اومدنش را برای امپراتور توضیح داد. سرور شاهان اونو با مهربانی پذیرفت. اون از اینکه رعیتی چنان شجاع و دلربا برای خدمت گذاری به نزدش اومده بود، خورسند بود و اونو از ملازم نزدیک خودش قرار داد. البته شاه دخت در برخورد با دیگر خدمتگزاران مواظب رفتار خودش بود چون که اونا پسر بودن و طوری رفتار می که اون اصلا خوشش نمی اومد. یه روز سرگرم درست کردن آب نبات بود که دو تن از شاهصادهای جوان اونو دیدن و نزدش اومدن. به اونا قضاییو که روی میز بود تعارف کرد. غذا اونقدر خوشمزه بود که اونا همشو خوردند و انگشتشونو لیست زدن. اونا این موضوع رو از دیگر دوستاشون پنهان نکردن. از اون موقع به بعد اونا شاه بیچاره رو لحظه ای آرون نذاشتن تا اینکه اون قول داد براشون قضا به و همه رو دعوت کنه. از غذا در یک روز معین همه ی آشپزای قصر مسموم شدن و کسی نبود که آتیش و روشن سازه. قدمتکارا با شنیدن این خبر عجیب پیش رفیق خودشون رفتن و التماس کردن تا به فریادشون برسه. شاهدخت هم آدمی نیکسرشت بود و هم به آشپزی علاقه داشت. پس پیشبند بست و بیدرنگ به آشپزخونه که زیر ساختمون بود رفت. وقتی غذای امپراتور رو براش بردن چون به مذاقش خیلی خوش اومد بیشتر از دفاعی قبل نوشه جان کرد. البته پرخوری برای سلامتیش خوب نبود. صبح روز بعد هم که از خواب برخاست، دنبال رئیس آشپزها فرستاد و به اون دستور داد که غذای مثل غذای روز قبل درست کنه. آشپز که میدونست نمیتونه چنان غذایی درست کنه، از ترس به زانو افتاد و حقیقتو گفت. امپراتور خیلی متعجب شد، بهطوری که یادش رفت و به باده سرزنش بگیره. اون به فکر فرو رفته بود همین موقع چند تن از نوکرای امپراتور نزدش اومدن و به اون گفتن از همکار تازه واردشون شنیدن که گفته میدونه ایلیان رو کجا میشه پیدا کرد منظور اونها ایلیان مشهور بود که در ترانه ای از اون یاد شده ترانه این گونه آغاز میشه گیسو طلایی تلایی سرسبزند اونا با اطمینان گفتند که اون طوره طلایی رو در مالکیت خودش داره. شاهدخت وقتی شنید که امپراتور میخواد اونو ببینه، فوراً به حضورش رسید. امپراتور با لحن تند به اون گفت، فتف از من این حقیقت رو که ایلیان گیسو طلایی و میشناسی پنهان کردی. چرا این کارو کردی؟ من که در مقایسه با دیگر نکرانم با تو مهربون تر بودم. پس از اینکه که شاه دخت طره که به گردنش بسته بود به امپراتور نشون داد سرورش گفت گوش کن اگه هر جوری که شده صاحب انگیسو رو نزدم نیاری همون جایی که استادی گردن تو خواهم زد. حالا برو. دختر بیچاره بیهوده تلاش میکرد توضیح بده که چطور گیستو رو به دست آورده. اما فرمان روا گوشش اصلا به دهکار این حرفا نبود. اون هم تعظیم کنان از حضورش مرخص شد و به سراغ آفتاب رفت تا به پرسه چه بکنه. با شنیدن همون اولین کلمات خیال شاهدخت کمی راحت شد. نگران نباش بانو. همین دیشب برادرم به خواب اومد و گفت که جن، ایلیانو که گیسوی طلایی‌شو تو جاده پیدا کردی، اسیر کرده. ایلیان به اون گفته که پیش از ازدواج با کوتوله پسر، اون باید به عنوان هدیه نژاد اسیل مادیان رو براش بیاره. کوتوله پسر که از عشق اون نیمه دیوونه شده، روز و شب به چیز دیگه ای فکر نمی کنه جز اینکه چطور میتونه این کارو انجام بده. حالا پیش امپراتور بازگرد و از اون بیست کشتی پر از کالاهای های گرامبه ها بخواه. بقیه رو به تدریج میگم که چه بکنی؟ با شنیدن این راه نمایی فورا به حضور امپراتور رسید و گفت عمر امپراتور دراز باد. اله حضرت قدرتمند. آمدم بگویم کاری رو که فرمان داده اید میتونم انجام بدم. اگه بیست کشتی پر از کالاها و اجناس گران قیمت سرزمینتون در اختیارم بذاری. امپراتور گفت اگه ایلیانگی سوتلا رو نزدم بیاری، هرچی در اختیارمه به تو میدم. دهد. خیلی زود آماده شدند. شاه پسرنما سوار بزرگترین و زیباترین اونا شد. اسبش آفتاب هم کنارش بود. بادبانا کشیده شدن و سفر آغاز گردید. هفت هفته باد موافق اونا رو به غرب برد تا اینکه یه روز صبح زود چشمشون به جزیره ای وسط دریا افتاد. در خلیج کوچکی لنگر انداختن. شاه دخت شتاب ورد تا همراه آفتاب پیاده بشه. اما پیش از ترک کشتی یه جفت دمپایی کوچیک طلایی رو که با سنگای قیمتی تزیین شده بود به کمر خود بست. بعد سوار برافتاب در جزیره تاخت تا به چند قصر رسید که روی مهورهایی ساخته شده بودند که همیشه رو به خورشید میچرخیدند با شکوه ترین قصر توسط سه غلام مراقبت میشد. برق درخشان طلای دمپاییها ها چشمای آزمندشون گرفت. اونا با عجله پیش صاحب گنج دویدن و پرسیدن چه کسیه. شاه دخت گفت من تاجرم، راهم گم کردم و تو این جزیره مردابی سرگردون شدم. غلاما چون نمی آیا درسته که از تاجر استقبال کنن یا نه فورا نزده بانوی خود بازگشتن و هرچی دیده بودن تعریف کردن. البته کمی قبل خود اون از بالای بام قصر تاجر رو زیر نظر گرفته بود. خوشبختانه زندانبان اون بیرون رفته بود. چونکه همیشه سعی می‌کرد نژاد اصیل مادیانو بگیره. در اون لحظه بانوی قصر تنها بود. غلاما به خوبی ماجرا رو تعریف کردند. طوری که بانوشون برای رفتن به ساحل و دیدن دمپایی‌های زیبا این پا, پا می‌کرد. دمپایی‌ها از اونچه اون انتظار داشت قشنگتر بودند. و موقعی که تاجر اونو دعوت کرد به کشتیش بیاد و کالاهایی که به نظر خودش زیباتر و زریفتر بودن ببینه کنجکاوی بانو به حدی شده بود که نمیتونست دعوتش رد کنه همین که پاش به عرشه رسید فوراً دست بکار شد و تمام اشیای قیمتی که اونجا انبار شده بود زیر رو کرد اونقدر گرم تماشای کالاها بود که اصلا متوجه کشیده شدن بادبانای کشتی نشد. اونا با باد موافق که از پشت به بادبانا می خورد به سرعت پیش رفتند. ایلیان وقتی متوجه شد که برای بار دوم اسیر گشته از ته قلب بسیار شادمان شد. اما وانمود کرد که ناراحته و از اینکه دوباره گرفتار شده بسیار غمگینه اینگونه بود که اونا به درباره امپراتور رسیدن. داشتن پیاده می شدند که کتوله مادر مقابلشون سبز شد. اون فهمیده بود که ایلیان به همراه یه تاجر فرار کرده. اما چون پسرش حضور نداشت خودشون رو تعقیب کرد. کتوله مادر پا بر آب آبی دریا گذاشت. از روی موجی به موج دیگه می جهید. یه پاشت تو هوا و پای دیگش فرو رفته در آبای کفا پا به پای کشتی پیش میدوید و از نفساش آتیش می‌بارید. بالاخره به ساحل رسیدن. با یه نگاه ایلیان گفت که اون زن پیر حراسناک چه کسیه و شتابون زمزم کنان چیزایی به رو گفت. شاهدخت میون که حرفی بزنه اونو روی زینه آفتاب نشوند و به سرعت برق از اونجا دور شد. به شهر که نزدیک شدن شاهدخت نیستاد و در گوش آفتاب چیزی گفت. اون پرسید که چه بکنم؟ آفتاب گفت دستتو تو, تو گوش چپم کن و سنگ تیزی و که اونجاست بردار و پشت سرت بنداز. شاهدخت همین کارو کرد. با انداختن سنگ کوهی بزرگ از دل زمین سر برآورد. بود. کتوله مادر شروع کرد به بالا رفتن از او. هرچه اونا سریعتر پیشتاختن اونام تون تر بالا می رفت. اونا صدای اومدنش رو شنیدن. تندتر، تر. دوباره شاه دخت از اسب پرسید که چه بکنه. آفتاب گفت دست تو تو گوش راست هم فرو کن و شونه یا که اونجاست درار رو پشت سرت بنداز. شاه دخت هم کارو کرد. بلافاصله جنگلی بزرگ و انبوه بیرون زد. درختا چنان به هم چسبیده و برگا چنان زخیم بودن که حتی یک الیکایی که پرنده بسیار کوچکیه نمیتونست از اونجا رد شه اما پیرزن جنی مثل میمون از شاخه به شاخه دیگه میپرید و با این کار هرچه بیشتر به اونا نزدیک میشد. اون انقدر نزدیک شده بود که نفسای آتشینش گیسوان ایلیانو سوزوند. این بار نیز شاه در کمال نومیدی از اسب پرسید آیا کار دیگه این نمیشه کرد؟ آفتاب جواب داد زود باش حلقه نامزدی از انگشت ایلیان در رو پشت سرت بنداز. این بار برج بلند سنگی بزرگی نرم چون آج و سخت چون فولاد از دل زمین سر برآورد و تا درون ابرا فرو رفت. مادر کتوله از خشب نرهی کشید. اون می دونست که بالا رفتن از برج یا عبور از اون کار راحتی نبود. اما اون که نمی به این راحتی عقب نشینی کنه تموم توانه خودش رو جمع کرد و با پرش غیرعادی و عجیب خود را به نوک برج رسوند و درست در وسط حلقه ایلیان افتاد. دستاش که بر باروی برج چنگ انداخته بودن دیده می هرچی از دستش برمی اومد انجام داد. از دهنش آتش بیرون داد که به فراریا نرسید. اما بیش از صد فرسنگ از زمین های کشاورزی اطراف برج و نابود ساخت. انگار آتش شده بود. بعد آخرین زور خود را زد تا خودش آماده سازه. چنگالهاش از باروی برج کنده شد و از همون بالا به زمین افتاد و تکه تکه شد. شاهدخت که دید چه اتفاقی افتاده، با راهنمایی آفتاب به اون محل بازگشت و انگشتش روی برج قرار داد تا آروم آروم به دل زمین فرو رفت. برج ناپدید شد، انگار هرگز وجود نداشته. امپراتور با احترام بسیار ایلیان رو که شایسته چنان احترامی بود پذیرفت و با همون اولین نگاه به اون دل با اما ایلیان از این وزن چندان خوشنود نبود. اون در حالی که تو قصر یا باغ قصر گردش میکرد چهره اندوهگین داشت و پیوسته در این فکر بود که چرا مثل دیگر دختر را رفتار نمیکرد. اون همیشه در قدرت کسی بود که نفرتشو به دل داشت. زمانی که امپراتور از اون خواست که همسرش و شریک تاج و تختش ایلیان جواب داد احلا حضرت نهاد. من تا زمانی که گزیده ترین نجاد نریان و مادیان برای آورده ما نشود نشبد، لحظه ای در فکر ازدواج نیستم. امپراتور با شنیدن این حرف بار دیگر دنبال شاه پسرنما به سرنما فرستاد و گفت فتفرونرس، خیلی زود نژاد گزیده نریان و مادیان رو اینجا بیار. اگه موفق نشی سرتو به تاوانش از دست میدی. شاه دخت گفت امپراتور قدرتمند دستانت رو میبوسم من تازه از معموریت بازگشتم هنوز استراحت نکردم و فرمان معمولیتی دیگه دادی و منو به مرگ تهدید میکنی دربار شما پر از جوانان شجاع و دلاوره اونا حاضر و آمادن تا پی فرمان شما برن اونا میگن شما پادشاهی با انصاف هستی پس چرا یکی از اونا رو دنبال این کار نمیفرستی؟ من کجا باید دنبال چنان اسبای نجادهی بگردم و براتون بیارم؟ امپراتور گفت از کجا بدونم؟ اسبای نژاده ممکن است هر جایی باشد. تو آسمون یا تو زمین. باید اونا رو پیدا کنی. شاهدخت تازین کرد و به سراغ اسب شافداب رفت. اسب با دقت به حرفش گوش کرد. بعد گفت فوراً برام چندین پوست گاو میش بیار. اونا رو قیرندود کن و به پشتم بذار. نه ترس این بارم موفق میشی. اما در نهایت آرزوهای امپراتور پایان کارش خواهد بود. به زودی پوستای گاو میش آماده شد. شاه دخت به همراه آفتاب سفرشو آغاز کرد. راهی طولانی و سخت بود. سرانجام به جایی رسیدن که اسبا میچرخیدند کتوله پسر که همه جا دنبال ایلیان میگشت گشت، حیوسته تو این فکر بود که چگونه اونا رو دستگیر کنه. همین که شاه دختونو دید نزدش رفت و به اون گفت که ایلیان گریخته و مادر کتوله که سعی داشت ایلیان رو دوباره اسیر سازه بر اثر خشم زیاد مرده. با شنیدن این خبر خشم کور تمام وجود کتوله پسر رو فرا گرفت وناگهان به سوی شاهدخت حمله بود. اون نیز با خون سردی در انتظار بود که سر فرصت به حلاکتش برسونه. کتوله پسر شمشیر در دست به سوش حمله بود. در همون لحظه آفتاب جفتکی و بر سرش کوبید و اون نتونست از شمشیر استفاده کنه. شاهدخت آماده شد تا به اون ضربه بزنه. اسب خودش رو روی زانوهای کتوله انداخت و با این کار شمشیر تو ران کوتوله فرو رفت. نبرد خوشوندباری در گرفت و به نظر می رسید که زمین زیر پاشون دهن باز کرده. فریادای حراسنگیزشون جونه برای وحشی و فراری داد به طوری که از ترس به قارا پناه بردن. بالاخره توان شاه دخت رو به کاهش نهاد، کوتوله پسر در فرصتی مناسب شمشیرش رو فرو آورد شاه با حرکت سریع دستش شمشیر رو بالا برد و فرود دوورد و سر کتوله رو فرو انداخت. پیروز نبرد تمام بدنش بر اثر خستگی می وقتی حالش جا اومد به چمنزار رفت. جایی که اسبا در حال چریدن بودن. با راهنمایی آفتاب اون حواسش رو جمع کرد تا اسبا اونو نبیند. اون از درختی تنومند بالا رفت. از اونجا بین که دیده بشه میتونست خوب ببینه و بشنوه. بعد آفتاب شی کشید. اسبا با سرعت به طرفش دویدن چون که مشتاق بودن با اسب تازه وارد آشناشن. اما یه اسب که از غریبه ها خوشش نمی از جاش تکون نخورد. آفتاب خودشو به اسب رسوند و نشونداد و کاملا توجهشو جلب کرد. اسب به حمله آورد و با خشونت تمام به آفتاب ضربه زد، طوری که اگه پوستای گاو میش از بدنش محافظت نمیکرد، نفس آخر رو میکشید. میوند و اسب نبرد در گرفت و وقتی به پایان رسید، پوستای گاو میش، از شدت ضربه ها رشته رشته شده بودند. اسب خسته از نبرد هم با بدنی دردناک عقب نشست و روی علفه دراز کشید. دیگه کاری نمونده بود جز اون که نریان و مادیان رو به درباره امپراتور ببره. شاهدخت از درخت پایین اومد و سواره آفتاب شد. اسبه آهسته و آروم به دنبالشون حرکت می اسب زخمی هم پشت سرشون می وقتی به قصر رسیدن شاهدخت تمام اسبه رو به حیات قصر برد و خودش هم نزد امپراتور رفت. فوراً خبر به ایلیان رسید. اون شتابان خود رو به حیات رسوند و نریان و مادیان رو یک یک به اسب صدا کرد. با اولین نگاهش اسب به زخمی به لرزه افتاد و در یک آن درمان شد و هیچ نشونی از زخم روی پوست برراغش باقی نموند. همون موقع به امپراتور خبر دادن که ایلیان کجاست. اون هم به حیات رفت و به خواست ایلیان دستور داد تا مادیان های اصیل رو بدوشن بعد هر دو خودشون با شیر مادیان ها شستوشو دادن تا همیشه جوان بمونن و دیگه به کسی اجازه نداد به اونا نزدیک بشن این دستور شامل حال شاهدخت میشد. شاهدخت از این فرمان دلش به درد اومد و اندوهگین شد سختترین کارها به اون داده میشد. و قبل از اتمام دو اون بسیار خسته شده و توانش رو به ضعف نهاده بود. کمی بعد بارونی هر بارید. بارونی که هیچکس کس مانندش رو در گذشته به یاد نمی آورد. آب تا زانوان اسبا رسیده بود. ناگهان بارون بند اومد و به طور عجیبی همه جا یخ بست. یخ تا زانوان اسبا بالا اومده بود و اونا رو زمین گیر کرد. قلب شاهدخت از اندوه و بارغم سبک شد و شادمانه به سراغ اسبا رفت و شیرشون رو دوشید. اون به قدری ماهرانه این کار انجام داد که گویی سالیان سال هر روز صبح شیر دوشی کرده بود. اشق و علاقه امپراتور به ایلیان روز به روز شدیدتر تر شد. اما ایلیان هیچ ابراز علاقه ای و همیشه بحانه ای درستین داشت و ازدواجو به عقب مینداخت سرانجام به آخر خط رسید و همه چیزو تموم شده دید. روزی به امپراتور گفت سر برم، فقط یه تقاضای دیگه دارم. اگه اونو براورده سازی با تو پیوند زن و میبندم. به راستی که این همه سال شکیبایی به خرج دادی. امپراتور گفت کبوتر زیبایم، هم من و همون چه دارم آن توست. خواستتو بگو حتما براورده میکنم. ایلیان گفت پس شیشه آب مقدس که در کلیسای کوچکی در اون سوی رود اردن نگهداری میشه برام بیار بعد با هم عروسی خواهیم کرد. باز هم امپراتور به فدفورن رست دستور داد بیدرنگ سوی رود اردن بتازه و به هر قیمتی که شده آب مقدس رو برای ایلیان بیاره. آفتاب در حالی که زین می میکرد گفت بانوی من. این آخرین و سختترین کارته، اما نترس ترس چون که ساعت عمر امپراتور به ضربه‌های پایانی نزدیک میشه. اونا به راه افتادند، اسب که جادوگری حسابی بود به شاه دخت گفت که دقیقا کجا دنبال آب مقدس بگرده. اون گفت شیشه آب مقدس در مهراب کلیسای کوچکه و گروهی از راهبا از اونا با دقت مراقبت میکنند. اونا شب و روز بیدارن و به نوبت نگهبانی میدن. گاهی راهب بزرگ به اونا سر میزنه و مطالبی خاص و به اونا آموزش میده. دونستن این مطالب برای راهبا ضروریه. در چنین وضعی یکی از راهبا نگهبانی میده. اگه بخت یارمون باشه و به موقع به میتونیم شیشه رو برداریم. هیچ راه دیگهی برای به دست و وردن آب مقدس وجود نداره. اونا چشم اندازه کلیسا رو اون سوی روده اردان دیدن. وقتی به اونجا رسیدن، راهب بزرگ بیرون اومده بود و راهبارو به نزد خود فراخوند. همه اونا زیر درختی نشستن. راهب بزرگ ایستاد و مطالبی رو به اونا آموخت. در اون موقع فقط یه راهب نگهبانی میداد. داد. شاهدخت بسیار خوشحال شد. راهب بزرگ حرفای زیادی برای گفتن داشت. روز گرمی بود و راهبا که خسته شده بودن همونجا زیر درخت دراز کشیدن و به خواب رفتن. همان موقع آفتاب به شاه دخت گفت که چی کار کنه. دختر به آرومی جلو رفت و از کنار راهبای خفته گذشت. بعد مثل گربه به داخل راهرو تاریک خزید. با دست کشیدن بر دیوار سعی داشت به چیزی برخورد نکنه یا روی چیزی نیفته. الاخره بی هیچ دردسری به مهراب رسید و شیشه ی آب مقدس و دید. اونو برداشت و میونه لباسش پنهان کرد و با همون دقت و حواس جمعی که اومده بود بازگشت. با یه پرش پشت اسبش پرید و و کشید و مثل برق از اونجا دور شد. با کوبیده شدن سم اسب بر لایه های هوا راه به نگهبان از جا پرید. همه فوراً فهمیدن که گنج قیمتیشون دزدیده شده. چون که راهب چنان جیغی کشید که بر اثر اون همه راهبا از جا پریدن تا ببینن چه اتفاقی افتاده بود. راهب بزرگم بیرون اومد و با دیدن اسب و سوارش در هوا فهمید که نمیتونه به اونا برسه. او به زانو افتاد و مرگبارترین بارترین نفرین و نسار دزد کرد. اون نفرین کرد اگه دوست مرده به زن تبدیل بشه و اگه زنه به مرد تبدیل کرده. اون فکر میکرد هرچی باشه این کیفر سختی برای دوست خواهد بود. اما کیفر مواردی هستند که انسان همیشه دربارشون با هم توافق ندارند شاهدخت ناگهان احساس کرد که واقعا به مرد گونه که وانمود میکرد تبدیل شده. اون بسیار خوشنود شد، و اگه راهب بزرگ در اونجا بود حتما از او سپاسگذاری میکرد فتفران هم که به قصر رسید به چشم تمام کسایی که در اونجا بودن مردی جوان اومد حتی کتوله مادر که میگفت اون دختر بود اگه زنده بود به وجود خودش شک میکرد شاه دختر پسر شده شیشه آب مقدس و از زیر لباسش درآورد و به امپراتور داد بعد گفت درود بر امپراتور قدرتمند. این کار را هم به درستی انجام دادم. امیدوارم که آخرین معموریت هم باشه. حالا باید کسی دیگه جامو پر کنه. امپراتور گفت فتفرون رست. از تو راضیم پس از مرگم این تو هستی که باید بر تخت حکومت بنشینی. دیگر پسری برای خدمت گذاری به خودم نمیخواهم خودم هم پسری ندارم. اگر صاحب پسری می شدم که بزرگترین آرزویم بود، اون رو به دست تو می سپردم تا در تمام کارها راهنماش می بودی. اگرچه امپراتور از هر نظر راضی و خوشنود بود، ایلیان ناراضی و ناخشنود بود. اون تصمیم گرفته بود از امپراتور انتقام بگیره. این فتفران رس بود که به خاطر براورده ساختن خاسته های اون به دستور امپراتور عمل می کرد. اون معتقد بود اگه امپراتور واقعاً خواهانش بود و قصد ازدواج با اونو داشت، خودش بعد خواستهاشش را براورده میساخت. به دستور ایلیان لگن بزرگ و پر از شیر مادیان کردن. اون از امپراتور تقاضا کرد که جامعه سفید بپوشه و خودشو شست و شو بده. امپراتور با میل و رقبت پذیرفت، موقعی که امپراتور تا گردن تو شیر فرو رفته بود، ایلیان علامتی برای اسبی که با آفتاب جنگیده بود فرستاد اسب پی به مفهوم علامت رمزی برد و فهمید چه بکنه اسب از یه سوراخ بینی هوای تازه بر ایلیان فرستاد و از سوراخ دیگر بینیش باد آتشین نسار امپراتور کرد. او برخود لرزید و اندکی بعد مشتی خاکستر باقی موند امپراتور به مرگی عجیب مرد و کسی نتونست در این مورد توضیح بده مرگ اون باعث اندوه مردم کشورش شد براش مراسم خاک سپاریه با گرفتن کسی تا اون زمان چنان مراسمی ندیده بود پس از پایان سوگواری ایلیان دستور داد که فتفران رست نزدش حاضر شه. خطاب به او چنین گفت فتفرون رس، این تو بودی که مرا به اینجا آوردی و زندگی ما نجات دادی. این تو بودی که آرزوهام رو براورده ساختی. اسبان نجاده رو برام وردی، کتوله پسر رو کشتی، ممادر ساهرش رو به حلاکت رسوندی. آب مقدس رو تو برامو وردی، پس به جز تو کسی شایسته همسریم نیست. مرد جوان جواب داد، آری من با تو ازدواج میکنم.